الا بستان 26 جوان 2008. دیوید پرسید: «امشب شام برویم بیرون توی نورتمپتون یک رستوران تایلندی تازه باز شده میگویند غذایش خیلی خوب است چطور است بچه ها را بگذاریم خانه بمانند و خودمان دوتایی برویم چه میگویی؟ راستش این شنبه شب الا اصلا دلش نمیخواست با شوهرش تنها غذا بخورد اما دیوید آنقدر اصرار کرد که نتوانست بگوید نه رستوران بدر نقرهای کوچک و تنگ بود اما همانقدر هم شیک بود روی میزها لامپاهای شیشهای فانتزی و دستمال صفرهای ساتن مشکی گذاشته بودند روی دیوارها دهها آینه قابدار بود آینهها ها انقدر زیاد بود که مشتریها انگار با باستا به خودشان قضا میخوردند خیلی طول نکشید تا الله احساس قریبی بکند علتش محیط یا دکوراسیون نبود. شوهرش بود. در چشمهای دیوید درخششی غیرعادی بود. انگار از چیزی ناراحت بود. کمی عصبی به نظر می رسید. اما چیزی که واقعا باعث نگرانی الا شد تتپت کردن دیوید بود. خیلی خوب میدانست که برای عود کردن لکنت زبانی دیوید که یادگار دوران بچگیش بود، باید خیلی پریشان و مسترب میشد. کمی بعد دختری که لباس محلی تایلندی تنش بود، برای گرفتن سفارش آمد. دیوید صدف سیاه تند سفارش داد. الا اما، به تصمیمی که روز تولد چهل سالگیش گرفته بود تا دیگر گوشت نخورد وفادار ماند و توفو باسوس نارگیل سفارش داد علاوه بر اینها شراب هم خواستند چند دقیقه درباره چیزهای عادی صحبت کردند از اینجا و آنجا درباره آشناها بعد درباره دکوراسیون حرف زدند روی میز غذا بهتر است از دستمال سفره مشکی استفاده کرد یا سفید زینت های سنتی تاثیرگذارتر است یا مدر. بعد ساکت شدند بیست سال زندگی مشترک آن همه صبحی که با هم بیدار شده بودند مسافرت‌ها آرزوهایی که برآورده شده بود، دعواها، مرافعه ها، ها، سه بچهی که به دنیا آورده بودند و بعد از همه اینها جایی که رسیده بودند سکوتی بزرگ بود. به اینها فکر کرد الا. چشمهایش اشک شد. دوباره که سر صحبت باز شد دیوید بود که گفت میبینم مصنوی میخوانی الا با آنکه با حیرتی آشکار سرش را تکان داد درست نمیدانست بیشتر از چه چیزی حیرت کرده از اینکه دیوید مولوی را میشناسد یا از اینکه کنجکاو شده بداند زنش چه چیزی میخواند گفت آن رمان را یادت می آید که مؤسسه انتشاراتی داده بود برای بررسی ملت عشق. فکر کردم برای نوشتن گزارش به کارم می آید برای همین چند کتاب مولوی را خریدم هر هرچه بیشتر خواندم بیشتر خوشم آمد الان شبها مرتب مصنوی می چشم های دیوید به تکنانی روی میز خیره ماند. با کنایه به تکنان گفت. بله، آها، آن رمان چطور بود؟ پسندیدی؟ الا سعی کرد تشویشش را پنهان کند. بله، خیلی خوشم آمد. درست در آن هنگام دیوید نگاه های متهم کننداش را به طرف زنش برگرداند و گفت: «بازی بس است الا هر دو آدمهای عاقل و بالغی هستیم میدانم چه خبرهاست؟ متوجه همه چیز هستم الا پرسید: در باره چی حرف میزنی؟ اما مطمئن نبود که میخواهد جواب سوالش را بشنود نگران شده بود دیوید یک دفعه گفت درباره زیرابی رفتنهایت، رفتن هایت درباره ماجراهای عشقیت از آن مردک خبر دارم میدانم مرتب نامنگاری میکنید متوجهم که داری به من خیانت میکنی الا از حیرت کم مانده بود پس بی صورت دیوید در نور شم به بیگانه ها میمانست. الا گفت به تو خیانت می کنم. آنکه که خودش متوجه شود صدایش را آنقدر بالا برده بود که زوج موبور میز بقلی سرشان را بلند کردند و او را نگاه کردند. الا که نگاه دیگر مشتریها را روی خود حس کرده بود از خجالت سرخ شد صدایش را پایین آورد و دوباره پرسید تو درباره چی داری حرف میزنی؟ دیوید گفت من که احمق نیستم الا راستش شک کرده بودم آخر سر دیشب که خوابیده بودی به صندوق ایمیلت سر زدم. همه نامه‌هایی را که با آن مرد رد و بدل کرده بودید، خواندم. الا فریاد زد. چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ دیگر برایش مهم نبود که دیگر مشتری ها چه فکری می می‌کنند. دیوید به جای آن آنکه به سؤال الا جواب بدهد، حرف هایی را که میخواست بزند سبک سنگین کرد و ادامه داد تو را مقصر نمی دانم گناهکار اصلی منم به تو توجه نکردم تو هم توجه و محبت را در جای دیگری جستجو کردی الا سرش را به جلو خم کرد درست از بالا به لیوانش نگاه کرد رنگ شراب جسبش می کرد. به رنگ یاقوت می مانست. لحظه روی سطح شراب انگار نختهای نورانی درخشیدند و خاموش شدند. شبیه راهی نورانی بود. شاید همراهی واقعی بود که از اینجا به فراسو می رفت. تنها خاستهش پیدا کردن آن راه و فرار کردن بود دیوید هم دیگر سکوت کرده بود بینشان دیواری نامرئی سربراورده بود مدتی همانطور سامت و ساکت نشستند سرانجام دیوید گفت حاضرم ببخشمت الا البته از تو هم میخواهم که مرا ببخشی گذشته ها دیگر گذشته بیا همه چیز را از نو شروع کنیم. به نوک زبان الله خیلی چیزها آمد در آن لحظه. میخواست داد بزند هوار بکشد به شوهرش بگوید چه بلاها سر او آورده. یادش بیاورد که خودش سالهاست دارد به او خیانت میکند و حق ندارد نام نگاری معصومانه او و عزیز را. با غلطهایی که خودش می کند در یک کفه بگذارد اما هیچ کدام از این کارها را نکرد از میان فکرهایی که از ذهنش میگذشت ساده‌ترینشان را انتخاب کرد گفت پس ماجراهای تو چه می شود آنها را هم میخواهی در گذشته دفن کنی درست در همان لحظه سر و دختر خدمتکار سفارش‌ها در دست و لبخندی ساختگی به لب پیدا شد. الاو و دیوید خودشان را عقب کشیدند و با نگاهی بی‌اعتنا خدمتکار را تماشا کردند که بشقاب ها را روی میز می‌گذاشت. دوباره که تنها ماندن دیوید نگاه سرزنش بارش را از بالای قضاها که بخار از رویشان بلند میشد به زنش دوخت. پس مسئله این بوده. میخواستی از من انتقام بگیری. همینطور است عزیزم؟ الا با آرامش گفت. نه قصد انتقام ندارم. هیچ وقت هم نداشتم. خو پس چی؟ الا با حالتی بسیار مشوش دستهایش را هم گره کرد و نفس عمیقی کشید. انگار همه کس و همه چیز در رستوران از حرکت ایستاده بود. همه از پیشخدمت بگیر تا آشپس، از مشتری میز بقلی بگیر تا ماهی توی آکواریوم، گوش تیز کرده بودند تا حرف‌های او را بشنوند سرانجام گفت عشق من عاشق عزیز شده‌ام دیوید اعتراضکنان گفت آن مرد را حتی نمیشناسی. خیلی چیزها هست که در باره اش چیزی نمیدانی. شاید یارو بیمار روانی باشد الا گفت برای شناختنش لازم نیست چیز زیادی بدانم جوهرش را می‌بینم الا با خود گفت الان است که شوهرش به او بخندد منتظر چند جمله گزنده و تیز یا مسخره آمیز ماند اما همچو چیزی نشد اعتراض که هیچ از دیوید جیک هم در نیامد. آخر سر که توانست سرش را بلند کند و نگاه کند، در چهره شوهرش فقط نگرانی دید. و در آن لحظه الا روبینشتاین فهمید انتقام، خشم، حتی شهوت نزد شوهرش چیزهایی قابل درکم. عشق آخرین ای بود که دیوید انتظار داشت از زنش، زنی که این همه مدت علیه عشق حرف زده و عشق را حقیر شمورده بود بشنود. دیوید با صدایی لرزان گفت، ولی ما سه تا بچه داریم، الا گفت، بله داریم و هر را خیلی دوست دارم. شانههایش افتاد روی پیشانیش رگی آبی رنگ پیدا شد گفت اما عاشق عزیز شدم دیوید عصبی شد و گفت بس است دیگر از این کلمه استفاده نکن شراب توی لیوانش را تمام کرد با نوک انگشتانش روی میز دایرههایی لرزان کشید بعد دوباره سعی کرد آرام باشد گفت من متوجه اشتباهاتم هستم الا بدون اینکه بخواهم دلت را شکستم اما میخواهم یک چیز را بدانی حتی لحظه هم نبوده که را دوست نداشته باشم از این به بعد هیچ وقت به تو خیانت نمی کنم قول میدهم اگر در وجود دیگران دنبال عشق بگردی اشتباه میکنی. هیچ کس نمیتواند تو را به اندازه من دوست داشته باشد مگر نمیفهمی. الا گفت در وجود دیگران دنبال چیزی نمیگردم اما انگار این حرف را بیشتر از آن که به شوهرش گفته باشد به خودش گفته بود بی آنکه به حرفهایی که میزند فکر کند بی آنکه بداند حرفهایش به کجا خواهد کشید زمزمه کنان گفت مولوی میگوید، عشق چیزی نیست که بیرون بشود پیدایش کرد درونی است تنها کاری که باید بکنیم این است که موانعی را که در درونمان جلوه عشق را میگیرند پیدا کنیم و از میان برداریم. دیوید پرید وسط حرفش. گفت نگذار دهانم باز بشود. به خودت بیا. این تو نیستی. خودت را گول میزنی. بازی در می آوری. کتاب های شعر توی دستت و خیال مختلف توی کلت. اما بس است دیگر. تو آدمی اینطور رمانتیک نیستی. ابروهای الله لحظهی در هم فرو رفت. یادش افتاد این حرف را قبلا هم شنیده بوده. اتهام رمانتیک بودن که زمانی در آشپس خانهاش خانهش به دختر بزرگش زده بود، الان سر خودش آمده بود. دایره کامل شده بود. حرف هایی که زده بود مثل بومرنگ به طرف خودش برگشته بود صندلیش را به عقب هل داد و دستمال سفره را کناری گذاشت آرام گفت دیگر می توانیم به خانه برگردیم اشتهایم کور شد موقع برگشتن توی ماشین یک کلمه هم حرف نزدم آن شب در تخت های جداگانه خوابیدند، کاری به کار همدیگر نداشتند، و صبح روز بعد اولین کاری که الا کرد، نوشتن نامی بلند بالا و سمیمی برای عزیز بود. اوضاع از روال عادی خارج شده بود، وضعیت غیر منتظری پیش آمده بود. عزیز هم حق داشت این را بداند.